امریکا کشورهای دنیا جريانه های دنیا آدمهای دنیا رو به سه قسم تقسیم میکنه یک قسم گوش به ها کشورهای گوش بفرمان جريانه های سیاسی و اجتماعی گوش بفرمان یا آدمهای گوش بفرمان یه اده اینا یه کشورهایی که گوش به فرمان نیستند اما باید با آنها مدارا کرد بعضی از کشورها بعضی از شخصیت بعضی از جریان ها به نظر آمریکا اینجورین که باید با اونها مدارا کرد منافع مشترکی تعریف کرد یه جوری با اونها فعلا کنار آمد که حالا بعد توضیح میزنم قسم سوم کشورهای نافرمان، اونایی که زیر بار امریکا نمیرن، باج با امریکا نمیدن؟ یه دستم اینا همه کشورهای دنیا، همه جریانهای سیاسی و اجتماعی و مدنی آلم و اقتصادی عالم و همه آدمها و شخصیتهای برجسته و ممتاز و نشاندار آلم از این سه قسم به نظر امریکایی خارج نیستند یا سرسپردند و گوش بفرمانند یا مستقلی هستند که باید باشون مدارا کرد و یا اینکه نافرمانند و دلیلی نشان میدند گستاقی نشان میدهند جور دیگه باید با آنها رفتار کرد